هر که در زندگانی نانش نخورند چون بمیرد نامش نبرند. لذت انگور بیوه داند نه خداوند میوه. یوسف صدیق علیه سلام در خوشک سال مصر سیر نخوردی تا گرسنگان فراموش نکند. آن که در راحت و تنعم زیست او چه داند که حال گرسنه چیست، حال درماندگان کسی داند که به احوال خیش درماند، ای که بر مرکب تازند سواری هوشدار که خر خارکش مسکین در آب و گل است، آتش از خانه همساگه درویش مخا؟ کانچه بر روزن او می دود دل است.